دوست داشتنی نشه نمازخون نمیشی چرا بعضی بعد هجابم بی هجاب میان بیرون چون دوست دارن چرا بعضی ها میشینن فیلم و کلیپ خراب میبینن چون دوست دارن چرا بعضی بعدشون میاد چون دوست ندارن حال نمیکنن همه رابطه های عالم دوستی و محبته. اصلا خداوند خلقت عالم رو بناش رو گذاشته بر محبت خود خدا گفت من دوست دارم انسانی و بیافرینم که یک گنجی به نام خدا رو چکار کنه؟ پیدا کنه خدا گنجی نهفته است که ما انسانها رو آفریده تا ما بگردیم خدا رو پیدا کنیم برای خودمون حالا پیدا کردی شما؟ نگاه کنید رفقا رشد ما انسانها در گروه چیه؟ پیامبر فرمود مع من احبه تو محشور میشی با چیزی که دوستش داری همین رابطه جذبه دیگه تو همراه کسی میشی که دوستش داشته باشی گاهی اوقات میشه ما یه مداد تراشو دوست داریم همیشه هم همراه خودمون هست آقا میزنیم تو صورت این رفیقمون خلاصه چششو میاریم می بالا بادمجون درست میکنیم و اینا چی شده آقا این مداد تراش منو ورداشته برای مداد تراش حالا اینایی که دارم میگم نه اینکه حالا بگم حسشو بگیری فردا اول مدرسه بری خلاصه این کارا نه ولی میخوام بگم محبت اینه رابطهش حالا نگاه کن گیاه خداوند در ذات گیاه برای جذب و برای رشد یک در واقع عملی به نام عمل نباتی گذاشته نورو جذب میکنه آبو جذب میکنه رشد میکنه در حیوان یه چیزی به نام غریزه گذاشته تا گرسنه نشه نمیره سراغ غذا اما در انسان این جذب و این رابطه رابطه چیه؟ تولا و توراست تو کی روشت میکنی میایی بالا؟ زمانی که کسی دوست داشته باشی در رابطه تو با پدرت اینم بگم آقا من بابامو خیلی دوست دارم دمت گم باری آقا مادرم هم خیلی میخوام باریکلا به تو عجب بچه خوبی هستی اما آقا میگه برو نون بگیر بیخیال آقا نون چیه خب پتو چه دوست داشتنی هست دوست داشتن روابط و زوابط میخواهد حالا میخوام بگم که در رابطه با تولا و تبررا یه نکتر رو دقت کنید خدا چرا گفته اهل بیت ما دوست داشته باشیم آه کی میتونه تو ذهنش بگه خدا چرا گفته ما اهل تو باید دوست داشته باشیم آقا امام حسین رو برای چی باید دوست داشت خب حالا امام حسین خیلی قشنگ و دوست داشتنیه و همه باید دوست داشته باشن حتی اونایی که هم بیرون دینم نگاه میکنن یکی میگفت که من تعذیه اجرا میکردم تو مثلا اروپا رفته بودیم تعذیه اونها نمیفهمیدن ما چی میگیم ولی همین که حضرت سکینه میامد من مثلا نقش حضرت سکینه رو بازی میکردم میامد یکی میگو آقا آب بده گفت همین که من سر اومین پایین پایین امام حسین رو بازی میکردم که به این میگم آقا شرمنده من آب ندارم گفت اونها میفهمیدن و می شدن اصلا رابطه کربلا رو خدا یه جوری آفریده که همه عاشقش میشن این بمانه اما میخوام بگم نگاه کنید رفقا ما گفتیم رابطه محبت رابطه جذب نزدیکیه درسته؟ اینو که قبول کردیم دیگه هر کسی هر چیزی رو دوست داشته باشه با اونه آقا عمرن اگه کسی پرسپولیسی باشه بگم بیاد استقلالی شو اصلا نمیشه حالا یکی استقلالی باشه بگم بیاد پرسپولیس شاید اینجا بشه <تصفيق> اما پرسپولیسی بشه بره استقلالی عمرن نمیشه, نمیشه. حالا اونطوری بشه خب معلوم شد ما کجایی هستیم <تصفيق> حالا بیا جلو با من جذب و محبت رابطه جذب چرا خدا گفته اهل بیت رو دوست داشت اگر نزدیک اهل بیت بشیم چه اتفاقی میفته رفقا چون اگه دوست داشته باشیم نزدیک میشیم دیگه یه مثال میخوام بزنم توپ توپ توپ توپ نگاه کنید دیدید آقا من تو کوچه زاغالی اگه برید تجریش من دیدم اینایی که مثلا کار آهنگری میکنن یه کوره هایی دارن این آهن که میخوان فرمش بدن آهن رو میخوان شکلش بدن یه شکلی درست بکنن آهن رو میبرن جلوی چیه کوره این آهن وقتی که نزدیک آتیش میشه خواست چی رو پیدا میکنه؟ آتش رو دست میزنی و آتش میسوزونه این آتش هم که سرخ میشه دست آهنم که سرخ میشه دست به آهن بزنی میسوزه این آهن همون خواص آتشو میگیره اگر ما نزدیک اهل بیت بشیم چه اتفاق میفته خواص اهل رو میگیریم آقا دوست داشتن به تنهایی که اگر ما رو و اهل بیت نکنه کاری رو ما صورت نمیگیره حالا تو یه آهن و ورده بدونی که نزدیک آتیش بکنی با پکی ورده فردا میگم من میخوام مثلا چی یه تیشه درست کنم عمرن اگر این فرم بگیر تو باید نزدیک اهل بیت بشی تو هیئت میای باید با امام حسین نزدیک بشی این خاصیت هیعته این خاصیت روزه و ذکر با عبداللهه اگر کسی حیات بیاد نزدیک به ابو عبدالله نشه این نمیتونه فرم بگیره این نمیتونه امام صادق علیه السلام به سید همیری گفتش که تو دوست داشتن ما کفایت نمیکنه آخه سید همیری در واقع کیسانیه ای بود شیعه نبود فقط امام صادق و دوست داشت و این فایده نداره دوست داشتن همراه با امامت و ولایت خیلی اهل بیت الان دوست دارن الان ما خیلی داریم شافعی داریم این در واقع فرق اهل سنت که شافعی و مالکی و حنفی و هنبلی هستن که حالا حنبلی‌هاشون دو فرقه شدن یک شون در واقع سلفی هستن که شاخه وهابیت سلفیایی که الان تو سوریه دارن انسان میکشن لعنت الله علی که دارن انسان میکشن بچه معصوم میکشن تا بتونن حالا به اون نیات پدید خودشون برسن ولی بقیه اهل اح... سنت اهلویتو دوست دارن امام صادق میگه آها فایده نداره یه علی ابن خالد زیدیست بچه اینم داستان قشنگه این میگه که من اومدم سامرا زیدی است، زیدیه که میدونید دیگه علی بن در زید ابن علی ابن الحسین رو قبول ندارن یعنی بعد امام سجاد امام باقر به و دیگه قبول ندارن دوستشون دارن به عنوان فرزندان پیامبر اما به عنوان امام قبول ندارن الانم تو یمن خیلی هستند. این ها که تو یمن قیام کردن و شیعه هستن و دست به توفنگن اینا همه‌شون زیدیان البته چند تا از بزرگاشون اومدن قوم در واقع شیعه شدن اینه اومدن با مکتب شیعه آشنا شدن اصناعشری شیعه شدن و الان هم نزدیکه که قالبشون شیعه بشن و اصلا هم میدونید که در واقع قیامی که در یمن قبل از قیام امام زمان سه چهار ما قبل از قیام امام زمان یک انقلابی تو یمن میشه سید یمانی در واقع اونجا قدرت رو به دست میگیره که خیلی هم سفارش شده به این سید یمانی اهل بهت فرمودن اگر قیام کرد و کسی کمکش نکنه او در واقع چیه کافر مشرکه انقدر در واقع سید یمانی تو یمن تایید شده در روایات ما این زیدیه بود علی خالد گفت من دیدم تو سامرا یه منطقه خیلی خلاصه تو میدون آزادی مثلا فکر کنید سامرا اومده شلوغ شده رفتم جلو ببینم چه خبر گفتن آره یه نفر اومده ادعای نبوت کرده زندانیش کردم گفت من اونجا سرشناس بودم با دربار رابطه داشتم و اینا اصرار کردم من برم این آقا رو ببینم آخه چرا ادعای پیانبری کرده ادعای پیانبری مساویه با اعدامه ما بعد پیامبر که پیامبر نداریم میگه رفتم جلو گفتم آقا مثلا دیدم صحبت کردم با این بنده خدا دیدم نه آدم معقولیه خیلی آدم عاقل و با حکمتیه حکیمیه گفتم خب داستان چیه گفت من کی ادعای پیامبری کردم من رفتم زیارت رأس حسین علیه السلام در شام اونجا دیدم از دوری آقای اومد جلو آقای فلانی حالا که اومدی زیارت رأس حسین جد ما ابا عبدالله دوست داری ببرمت کوفه جدمون المومنینم اونجا یک زیارتی بکنی آقا کی بدش میاد اخ خدامونه ولی چجوری اینجا کجا کوفه کجا گفت دوست داری بریم مدینه زیارت پیامبر اونجا هم دیداری داشته باشیم قاراقا گفت همین که گفتم گفت دستتو بده به من دستمو دادم به این آقا چند قدم که حرکت کردیم دیدم عالم یک تغییری کرد یه لحظه چشامو باز کردم دیدم تو کوفه در واقع مقابل زری آقا امیر المومنیم اینجا کجا شام کجا گفت اینجا آداب زیارتی داره نمازهایی داره دونه دونه به من آموخت نمازها رو خوندیم گفت آمادهی بریم مدینه گفت آره آقا دستم رو گرفت چند قدمی حرکت کردیم به تیل عرض اومدیم مدینه اصلا من خیلی متعجب خوشحال اونجا هم آداب و دستوراتی داد برگشتیم یک بار دیگه هم این اتفاق افتاد این آقا رو دو مرتبه دیدم همین که دیدم گفتم خب این دفعه آگاه شدم که آقا بپرسم این آقا کیه دستش رو گرفتم گفتم آقا رهاد نمی نمی‌کنم تا بگی تو کی تو محبوب منی تو عزیز منی گفت من جواد العئمه ابن الرضا علیه السلام هستم امام جواد علیه السلام گفت ما اینو گفتیم دستگیرمون کردیم گفت عجب گفت من داستان رو می برای محمد ابن عبدالملک وزیر معتصم من رابطم با اون خوبه تو آزاد میکنم یه نامه مفصل نوشتیم برای محمد ابن عبدالملک وزیر معتصم جواب داد عبدالله عبدالملک گفت همون کسی که این آقا رو برد کوفه و مدینه همون آقا هم بره نجاتش بده این جواب که اومد خیلی نامید شدیم گفتیم این بنده خدا رو ما گفتیم آزاد میکنیم اومدم برم جواب عبدالله محمد ابن عبد و بدم به این آقایی که زندان بود دیدم یک ولولهی در زندان سلام عزیزم دیدم یک زلزلهی در زندان به پا شده اومدم دیدم این زندان بانا و دربانا دارم میگردن میگن چیه؟ میگه بسته و اما زندانی نی همون آقا اومد نجاتش داد البته این در رابطه با هم همین اتفاق افتادان عباسلت و امام بدون اینکه زند... در زندان باز بشه عباسلت نجات داد عباسل گفت آقا من یک سال زندان بودم اما شما آقا جوادالعیمه چرا یه الان اومدید کمکم گفت آخه تو یک سال منو صدا نزدی امسال و این بار صدا زدی اومدم کمکت کرد این علی ابن خالد گفت من این اعجازو که دیدم دست از زیدیه برداشتم در واقع شیعه اسنا شدم میخوام اینو بگم رفقا خیلی وقتا اتفاق میفته محبت اهل بیت در واقع چیه کمک نمیکنه عباس بصیره میگه اومدم یه همسایه داشتیم که شرابخوار و خلاصه اهل موسیقی و اهل بزمو خلاصه گودبای پارتی میگرفت خونشون و فلان و این حرفا خلاصه مجالس مختلف میگرفت. گه اومدم بهش گفتم چند بارم نصیحتش کردم آقا این کارا چیه میکنی؟ و خلاصه این کارا نکن و خلاصه جشن پارتی نگیر و دختر پسرا رو با هم مثلا چیز نکن و رو دعوت نکن و اینا گوش نکن اومدم یه بار بیام خدمت آقا حج اومدم پیام خدمت امام صادق این شیعه بودن گفت اومد همسایه همون من گفت فلانی داری میری پیش امام صادق سلام منم به آقا برسون بگفت فلانی سلام رسون ببین آقا چی جواب میده ببین آقا چی جواب میده گفت اومدم و صحبت ها رو تو جلسه نشستیم و اصحاب بودن و یه مقدار خلوت شد موضوع همسایه همو به امام صادق گفتم امام صادق بچه ها میدونید چی فرمود یه روایتی هست یه روایتی هست که پیامبر فرموده میفرماید که محبت احلبه 20 تا اثر داره 10 تا دا اثرش تو این دنیاست 10 تا اثرش تو آخرتی که من حالا ایشالله براتون این روایت رو میام میخونم آثاری که در آخرت داره امام صادق گفت عبا بصیر به این همسایت بگو اگر میخوای روز قیامت شفاعت ما نصیبت بشه اگر میخوای موقع مردن در واقع ما به دادت برسیم اگر میخوای که اپل سراد رد بشه اگر میخوای وارد بهشت بشه اگر ما شفاعتت بکنیم دست از این کارات باید برداری. از اموال بنی اومعی بود عبا وسیر میگه اومدم و خب حج اومده بودم همه میامدن دیدن من گفت هم اینم اومد دیدن من جلسه که خلوت شد. پیغام امام صادق و بهش گفتم گفتم فلانی امام صادق اینطوری گفت دیدم سرشو انداخ پایینی چی نگفت گفت رفت دیدم صدا دیگه خونش نمیاد دیگه موسیقی و تردد خلاصه کنیز و اینا تو خونش نیست گفت دیدم مدتی تو بازار و اجتماع و خیابونم نمیاد رفتم دیدنش در زدم دیدم از پشت در بیرون نمیاد آی چرا بیرون نمیاد گفت برهنم چرا برهنه ای؟ گفت من تمام زندگیم حرام بود از بنی امیه بود همه رو دادم یه دست لباس هم ندارم بپوشم که بیام جلود حاضر شم گفت پریدم و از همسایه و خونه و بر لباس براش تیه کردم مدتی گذشت این مریض شد تو بستر افتاد رفتم سر بسترش دیدم رو کرد به من گفت وفا کرد امام صادق به عهدی که گفته بود گفتم اومدم پیش امام صادق سال بعد حج رفتم امام صادقم منو که دید گفت عبا بسیر ما به عهدی که بسیم وفا کردیم بهترین رفیق کی میخواد؟ چه اهل بیت امام رضا یک لقبی داره به نام در واقع امین بهترین رفیق احل بیتن آیت الله مرعشی رحمت الله علی نقل میکنه میگه من وقتی که آمورتزا حائری از دنیا رفتن پسر حاج عبدالکریم حائری که مؤسس حوزه علمی قوم بود گوه وقتی از دنیا رفتن در خواب دیدم آخه خواب من یه وقت خواب شما فرق میکنه آقای مرعشی همون کسی بود که شهری رو در خواب دیده بود اون شعر برو ای گدای مسکین در خانه علی زن خب این در واقع فرق میکنه خواب دیدن آیت الله مرش گفت آشق مرتزا رو خواب دیدم گفتم آی آشخ مرتزا چه حالی موقع مردن چه حالی بودی گفت شروع که تعریف کردن گفت اون لحظه ای که من در قبر گذاشتن و سنگ لحد گذاشتن همه رفتن همه رفیقای جون جونیت میرن فکر ها هر کسی که رفیق رفیق ترینه ته خیلی پایکار باشه میاد قصال خونه میشورنه زیر تابوتتو میگیره لا اله الله میگه میذارن تو قبر سنگ لحدو که میذارن خاک میریزن همه میگن آقا بود اتوبوسا میخوام حرکت کنه برای رستوران همه میرن ایش دیگه نمیمونه گفت سنگله هدو که گذاشتن دیدم دو پیکر زشت دو منظر زشت ترسناک دارم میان طرف من گفت هر چقدر اینا نزدیکتر میشدن ترس من بیشتر میشد وحشت من بیشتر میشد گفت به طوری که داشتم چیه روح از بدن توهی میکردم گفت یه لحظه دیدم یک پیکر زیبا از اون قسمت داره حرکت میکنه میاد. گفت نزدیک که میشد اینها دورتر میشدند هرچه این چهره نورانی و زیبا نزدیک میشد اینها دورتر شدن به محض که وارد قبر من شد اینها دیگه دور شدن یک آرامش و یک آرامی تمام وجود من و قبر و در بر گرفت اومد بالای سر من سر من رو به زانو گرفت گف آرام باش آخش آخ مرتزا برا چی نگرانی آقا شما که اومدید اونا رفتن آروم شدم شما کی هستید؟ شما خودتونو معرفی کنید قاشق مرتزا من امام رضا هستم تو اون دنیا سی و هفت بار اومدی به زیارت من این یک دفعه سی و شیش طلبت باشه میام به دیدارت بهترین رفیقان هم تو این دنیا هم تو آخرت باور نمیکنید روایت داریم هر که به زیارت آقا امام رضا علیه السلام بره پابوس آقا بره آقا براعت از جهنم و با آدم یک برگس میدن البته اگر اومدی از زیارت این برگر رو نسوزونی با چی می سوزه این برگه گناه این برگر رو بهت میدن بدون ردخور هر که بره زیارت برگر رو گرفته من نشنیدید شیخ حسن علی نخدکی نشسته بود گفت همه زوار وارد می شدند ببخشید محضر بزرگان و دوستان و هیئتیای های خودم گفت به شکل حیوان و به شکل در واقع احشام وارد می شدند دیدم آقا نشسته با دست ولایتیش میکشه بر این زوارش همه به شکل انسان وارد حرم میشن. این قدرت ولایت و زیارت یک برگه براعت از جهنم رو به ما میدن گفت دیدم آقا در عالم ملکوت و مکاشفه و رویا دیدم به یه نفر تا داد گو آقا من یک نفرم خب اومدم اینجا یه دونه برگه به من دادید دیگه چرا تا دادید گوه آخه داشتی از تهران میامدی زیارت دو نفرم تورا بهت گفتن حالا که داری میری سلام ما رو به آقا برسون اینم بده به همونها که سلام از راه دور دادن بهترین رفیق سختترین جاها دست ما رو میگیرن. آدم ول کنه این اهل بیت رو بره با کیر رفاقت بکنه. آدم ول کنه این اهل بیت رو بره با الله اکبر. دیگه نمیخوام ببرم تو اون عالم. ولی بهتون بگم محبت اهل بیت آدم رو به کجا میرسونه؟ به کجا میرسونه؟ هفته هفته دفاع مقدس یاد یاد این شهدا الله اکبر چه خاطراتی دارن اینا؟ به خدا قسم من که باورم اینه تک تکشون وقتی رو زمین می افتادن یا آقا امام زمان می بالا بلا سرشون،, سرشون رو دامن می یا عبا، عبا فضل العباس یا آقا عبا عبدالله الحسین علیه السلام غیر از این باور نکنید یه نمونه براتون میگم اگر باور ندارید این در واقع دیگه مستاق این طلبتون بقیش بماند برای بعد میگن یه قللای تو کرولاس به نام جون این قلام قلام عبازره شاید شنیدید این روزران ولی میخوام بگم که حال دلتون عوض بشه حال فضای مجلس عوض بشه. اینم دارم میگم به همه به یاد بچه همه بچه و و بچه هایی که شهید شدن. این روایت هم براتون بگم. فرمود یه روایت بسیار قشگی برای شوهد اینو یادگاری از من داشته باشید بچه ها فرمود شهید وقتی که خونش به زمین ریخته میشه و شهید میشه دفتر اعمالش بسته نمیشه الله اکبر تا زمانی که عالم هست این دفتر نامه اعمالش بازه و برای او حسنات نوشته میشه میدونی چرا؟ چون شهید رفته زمینه اصلاح جامعه رو فراهم کرده در جامعه هرچی کار خیر باشه تو پرونده اونم نوشته میشه یعنی امروز هرچی من و تو در واقع دین داریم در نامه حسین و شهدای کربلا نوشته شده این جون اومد دید همه رفتن دید هر رفت همه رفتن دونه دونه اصحاب رفتن اومد مقابل عبا عبدالله الحسین قلام اول فز قلام عبازره دیگه عبازر بخشیده اونو به عبا عبدالله الحسین اول به امام حسن و بعدم به امام حسین علیه السلام رو کرد به آقا امام حسین گوه اجازه بده برم میدان یه لحظه گفت آقا عبا عبدالله جون تو به امید این که ما به حکومت برسیم با ما اومدی تو تو خوشیا با ما همراه بودی الان دیگه وقت سختیه تو دیگه نمیخواد خونه تو در راه رکاب ما بدی برو. برو, برو یه لحظه دیدن سرش انداخ پایین های های شروع کرد گریه کردن گاگا یعنی منو داری رد میکنی برم آی کسی که عاشق امام زمانی دوست دارید امام زمانتون بیاد مبادا امام زمان یه بار بهتون بگه برید شما هم سری برید باید اصرار کنی تو ایت میایی باید اصرار کنی ازش بخوای بخواه مثل حباسد که خاص یه بار گفت آقا امام جواد العمه. آقا جواد العمه جوابشو داد این جون که نرفت که گوه آقا دست بر به خدا از شما که یه نگاه کرد به آقا امام حسین گو آقا به خاطر این که رنگ پوستم سیاهه منو میخوای رد بکنی به خاطر این که سیاه هم میخوای منو رد بکنی ای حسین به خاطر اینکه آلودم دامنم را آلوده به گناه کردم، میخوای شب منو رد کنی برم هاشا به کرمت، ها تو منو رد بکنی حسین. مگر میشه کسی بیاد در خونه حسین، سر سفره حسین، حسین ردش بکنه؟ گو آقا به خاطر اینکه غلامم، به خاطر اینکه رنگ آقا به خاطر اینکه بوی بدنم بد بویی میده به خاطر اینکه خدایا خونم خدایا امام حسین کسیفه میخوای منو رد بکنی این رفت چنان جنگی کرد وقتی که به زمین افتاد یه لحظه دید آقا ابا عبدالله بالا سرشه ادب کرد صدا نکرد حسینو اما خود حسین ادب میکنه بالا سرت میاد یه لحظه دیدن صورت سرش رو روی پاش گذاشت ابا عبدالله همون کاریو کرد با این جوان جون که با علی اکبرش کرد خم شد این محاسن و صورتش رو بر صورت جون گذاشت یعنی فرقی بین غلام و فرزند نیست سه تا دعا کرد اونجا برای این جون و غلام گفت خدا یا چهرش رو نورانی کن و وارد بهشت کن خدا یا بدنش رو خوشبو کن خدا یا تیب و خوشبوئی به بدنش بده میگن وقتی که اومدن شهدای کربلا رو به خاک می‌سپارن این بنی‌سد وقتی که اومدن شهدا رو به خاک می‌سپارن دیدن از یه نقطه بوی بسیار خوشبویی در فضا معطر اومدن جلو دیدن این قلام معطر شده اما بمیرم برای ارباب، اون لحظه ای که به روی زمین افتاد هرچی نگاه کردید دشمن دورش رو گرفتن هرکی داره با چیزی میزنه اون کسانی هم که شمشیر رو نیزه در دست ندارن دامناشونو سنگ کردن دارن سنگ میزنن هر کجا نجزی بلند بگو یا حسین